زولف برباد مد تا ندهی بربادم ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم میمخور با همه کس تا نخورم خون جگر سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم زولف را حلقه مکن تا نکنی در بندم تره را تا مده تا ندهی بر بادم یار بیگانه مشو تا نبری از خیشم غم اغیار تا نکنی ناشادم رخ برف روز که فارق کنی از برگ گلم قد برف راز که از سرف کنی آزادم شمع هر جمع مشو ورنب بسوزی ما را یاد هر قام مکن تا نروی از یادم شهرے شهر مشو تا نن هم سر در شور شیرین من و ما تا نکنی فرادم رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس تا به خاک در آسفت نرسد فریادم حافظ از جور تو ها شاکه Piker da et r, mennez an ruz ki der bende twaäm a aude.